به نام خدا کتاب افسانه های آفریقایی بچه های کوزهی نویسنده کتلین آرنوت ترجمه رزوان دسفودی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار های افثان. داستانهای ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده سهیلا آبدی داستان تبل آوازخان و کدوی سهرامیز صبح یه روز زیبا دسته از دختران کوچیک آفریقایی برای بازی لب دریا رفتن. تو روزای عادی معمولا این بچه ها سخت کار میکردن و مجبور بودن تمام روز جارو کنن، علفای هرزو بچینن، هیزم جمع کنن و از رودخونه آب بیارن. اما اون روز عید بود و بچه ها اجازه داشتن بازی کنن. اونا به ساحل اومده بودن تا با جمع کردن صدفای زیبا برای خودشون دستبند و گردنبند درست کنن. اونا با شادی روی ساحل شنی می دویدن و فریاد می زدن. پاهاشونو تو آبای کم عمق و کف کرده می کوبیدن اما به طرف آبای امیق نمی رفتن. چون بزرگتر به اونا هشدار داده بودن که تو اون قسمت ها کوسه های تیزدندونی هستن که اونا رو میخورن. از اون بدتر روح شیتونی شیطونی بودن که ممکن بود اونا رو زیر آب بکشن و برده خودشون بکنن. ساحل پر از صدف های زیبا بود. بعضی از اونا بزرگ و مثل مروارید براق بودن و بعضی هم ریز و کوچیک. وقتی بچه ها مشتی از زیباترین صدفها رو جمع کردن آماده شدن تا به طرف خونه هاشون برگردن و گردنبنداشون بندشونو درست کنند. یکی از دخترا صدفی پیدا کرد که بین صدفهای دیگران از همه زیباتر بود. اون از ترس این اینکه دیگران صدف اون اشتباهی بردارن اونو بالای صخره گذاشت. بعد از مدتی همه دخترها صدفوی خودشون رو جمع کردن و آماده برگشتن به خونه شدند. درست وقتی که نس به راهو رفته بودن دختر یادش اومد که صدفو بالای صخره گذاشته. ناگهان فریاد زد صدفم، زیباترین صدفم رو بالای صخره جا گذاشتم. بیایید برگردیم تا صدفمو بردارم. هیچکس از دوستاش حاضر نشد که با اون برگرده اونا گفتن تو این همه صدف جمع هم کردی حالا اون یکی نباشه عیبی نداره دختر گفت نه من باید حتما اون صدفو داشته باشم چون اون صدف با بقیه فرق داشت و زیباتر بود یکی از دخترها که از همه بزرگتر بود گفت پس خود تنها برو و اونو بردار ما خسته و گرست و میخواییم به خونه ها برگردیم دختر با ناامیدی به طرف ساحل برگشت و برای اینکه نترسه شروع کرد با صدای بلند آواز خوندن صدفم جا مونده صدف زیبا که چون ماه برراغه روی صخره مونده وقتی به سخره رسید با وحشت دید که قولی روی اون نشسته قول گفت دختر کچلو جلو بیا و باز از اون آوازت برام بخون دختر با پاهای لرزان و قلبی که به شدت می تبید یه قدم جلو رفت و آوازش رو دوباره خوند. قول گفت تو صدای زیبایی داری؟ یه بار دیگه هم برام بخون تا صدفتو بهت بدم. دختر دوباره آوازش رو خوند. قول دستش رو دراز کرد تا صدف رو به دختر پس بده اما وقتی دخترم دستشو برای گرفتن صدف دراز کرد، قول محکم دست اون گرفت. قرید و گفت، آها خوب گیره تنداختم. باید پیش خودم بمونی تا هر وقت که خواستم برام آواز بخونی. قول در حالی که با یه دست دختر رو محکم نگه داشته بود، دست دیگه دراز کرد و از پشت سخره تبل بزرگ چوبی درآورد رو برد. بعد دختر رو زیر پوست تبل گذاشت و دوباره پوست رو روی اون کشید. اون وقت به دختر که تو تبل بود گفت، از این به بعد تو باید برام آواز بخونی و یعنی مجبور میشم تو رو تنبیه کنم. بعدم و زیر بغلش زد و به نزدیکترین دهکده رفت. زیر یه سقف حسیری که مردم اونجا جمع میشن نشست و فریاد زد. ده گوش کنید. من تبلی جادویی دارم که اگه اونو به صدا در بیارم شما میتونید با صدای اون پای کوبی کنید و شاد باشید. در عوض شما هم برای مرق پخته با برنج بیارید مردم رفتن و برای اون غذا اووردن. قول بدون اینکه که تکه ای از غذا رو به دختر بده تمام اونو با حرس خورد بعد تبلو به صدا در آورد و دختر از داخل اون شروع به خوندن کرد وقتی مردم دیگه خسته شدن قول تبلشو برداشت و به دهکده رفت اونجا هم دوباره احالی و صدا زد و گفت برام نوشیدنی بیارید وقتی خوب نوشید دوباره تبلو به صدا در ورد مردم از شنیدن صدای زیبایی که از داخل تبل همزمان با نواختن تبل بیرون می اومد شگفت زده شده بودند. اما این بار قول جای بدی و برای کار شیطانش انتخاب کرده بود چون این ده کده ای که پدر و مادر دختر تو اون زندگی می بود اونا فاصله صدای دخترشونو رو شناختن و از خودشون پرسیدن چاره این کار چیه؟ یه موجود قویه و چون قوله قدرتای جادویی هم داره. مادر گفت نقشهای دارم. بیا تا جایی که میتونیم داروی خوابآور توی نوشیدنی بریزیم و به اون بنوشونیم تا به خواب بره. وقتی خوابید دخترمون رو نجات میدیم. پدر بلافاصله دست دست بکار شد و دارو رو تو کوزه نوشیدنی ریخت و به قول دان. بازم برام تبل بزن تا برات بیارم. کم کم ضربه های تبل آرومتر و آرومتر شد. قول بی حال روی زمین افتاد و به خواب رفت. وقتی که شب شد تمامی اهالی دهکده به کلبه هاشون رفتن. پدر و مادر دختر آروم به طرف قول رفتن و به دخترشون گفتن که آروم باشه تا اونو نجات بدن. اونا با سرعت پوسته روی تبلو کندن و دخترشون رو بیرون آوردن. مادر اون به کلبه برد و پنهان کرد اما پدر گفت کار من هنوز تموم نشده و با عجله از خونه بیرون رفت. اون به جنگل رفت و دو تا مار بزرگ و سمی شکار کرد و توی تبل گذاشت بعد لونه مرچه های گازگی کند و تعداد زیادی از اونها رو هم توی تبل گذاشت دست آخر هم با دود دسته از زنبور رو که روی ای بودن بی حال کرد و اونا رو داخل تبل گذاشت وقتی صبح شد قول از خواب بیدار شد و خواست راهش ادامه بده اما یکی از اهالی ده کده با التماس از اون خواست که یه بار دیگه تبلش رو به صدا در بیاره. قول شروع به نواختن تبل کرد، اما هیچ صدای آوازی اونو همراهی نکرد. اهالی ده همه اونو مسخره کردن و گفتن تبل تو دیگه ارزشی نداره. قول با شرمندگی از اونجا رفت. اون با خودش فکر کرد باید به گوشه خلوت بره و دختر رو تنبیه کنه. تبلش زیر بغلش گرفت و از جاده گذشت تا به گوشه دنجی توی جنگل رسید. با عصبانیت فریاد زد. حالا کاری میکنم که آواز بخونیم. و پوست تبلو برداشت. قول فرصت پیدا نکرد که حتی فرار کنه. زنبورا سر و شونه هاشو نیش زدن، موچه ها، رونا و کف پاش و گاز گرفتن، مارای سمی هم که میخواستن از داخل تبل فرار کنن، نیشاشونو تو دستای قول فرو کردن و لابلا یه علفا از نظر ناپدید شدن. تحمل این همه بلا برای یه قولم غیر ممکن بود. چند لحظه بعد قول روی زمین افتاد و مرد. هم کنارش افتاد. روز بعد، وقتی پدر دختر برای شکار به جنگل رفته بود، قول مرده را پیدا کرد. اما این پایان کار قول نبود. شب وقتی پدر از شکار برمیگشت، اثری از قول و تبلش نبود اما به جای اون گیاه کدوی روش کرده بود. مرد وقتی به دهکده برگشت به تمام اهالی گفت که چه دیده و به اونها هشدار داد که به اون نقطه شیطانی نزدیک نشن تا اتفاق بدی برای کسی نیفته. چند ماه بعد، چند تا پسر بچه یه کوچیک که تو جنگل با تیر و کموناشون بازی می‌کردن، به محلی رسیدن که قول اونجا مرده بود. پسر بزرگتر گفت: "کدو رو ببین، من که تو عمرم کدویی به این بزرگی ندیدم." پسر کوچیکتر گفت: کاری به اونجا نداشته باش. مگه نشنیدی که اینجا جادو شده؟ پسر بزرگتر گفت تو چقدر ترسویی؟ من که میخوام این کدو رو بچینم و برای شام به خونه ببرم. اون به جگه به حرف دوستش گوش کنه ساقه کدو غول پیکر رو کند اما ساقه بلا فاصله اونو به زمین کوبید. پسر دوم با دیدن این صحنه با وحشت شروع به فریاد زدن و دویدن کرد. پسر اولاً با تلاش تونست خودش از زمین بلند کنه و به دنبال دوستش بدوه وقتی بعد از مدتی بچه ها پشت سرشون نگاه کردند، کدوی بزرگی رو دیدن که با سرعت داشت دنبالشون میگلتید. اونا از وحشت بلندتر فریاد زدن و سعی کردند با سرعت بیشتری بدوان. اونقدر ترسیده بودند که نفهمیدن چقدر از دهکدشون دور شدن. ناگهان به رودی رسیدن که تا اون روز ندیده بودنش. در کنار رود یه مرد پیری توی قایق نشسته بود. بچه ها با فریاد گفتند کمک کمک کمک یه قول دنبال ماست. پیرمرد با عجله به طرف هاشیه رود پارو زد. بچه ها تو آخرین لحظه ها تونستن داخل قایق بپرند. صاغه های کدو قبل از اینکه بتونن دور اونا بپیچند تو آب افتادن. قایقران با عجله اونا رو به طرف رود برد. بچه‌ها با شتاب از قایق بیرون پریدن و به راهشون ادامه دادن. با این حال کدو از اونا فاصله زیادی نداشت. بچا میتونستان صدای اون رو بشنون که خار و خاشا که روی زمینو خرد میکرد و هر لحظه به اونا نزدیکتر میشد. اونقدر دویدن تا بده کدشون اونجایی که بزرگترها دوره هم نشسته بودن رسیدن. فریاد زدن کمک کنید کمک کنید کدوی شیطانی دنبال ماست. بزرگترا که قبلا درباره باره جادویی و قولای داخل اون چیزای زیادی شنیده بودن حرف اونا رو باور کردند و با عجله بچه ها رو به داخل کلبه بردن و پنهان کردند. خودشونم دوباره به جای برگشتن که قبلا نشسته بودند و آروم مشغول صحبت کردن شدند. ناگهان کدوی قول بین اونا قلتید. کدو در حالی که به این طرف و اون طرف می چرخید و خودشو به پاهای بزرگتر را می کوبید گفت اون دو پسر بچه کجا هستن؟ میدونم که جای پنهانشون کردید. زود اونا رو به من بدید. اونا برده های من هستند. پسر بچه ها وحشت زده در انتظار بودن تا ببینن بزرگتر چه تصمیمی میگیرن. یکی از مردو به بقیه گفت شمشیراتون رو بکشین و کدو رو تکه تکه کنید. بچه ها با شنیدن این حرف خوشحال شدن. بلا فاصله صدوی قرریدن، فریاد زدن و ضربه زدن بلند شد. چیزی نگزش که کدو سد تکه شد و روی زمین افتاد. بزرگتر گفتن، برید و تام میتونید هیزم جمع کنید تا باقی مونده این شیتون رو بسوزنید. بچه های آتیشی بزرگ توی میدون شهر روشن کردن و تکه های کدر رو تو اون سوزوندن. بزرگ دهکده گفت حالا باید خاکسترها رو دور از هم بپاشید و پخش کنید. پچه ها با شادی خاکسترها رو تو تمام دهکده تو باد پخش کردن. دیگه همه اطمینان داشتن که کارای شیطونی قول تموم شده. بچه ها با خیال راحت بده برگشتن و برای خانوادهشون تعریف کردند که چگونه کدو رو نابود کردن. دخترای کوچیک با خوشحالی گردن بندهای صدفشون به گردنشون انداختن و با شادی شروع به آواز خوندن کردن. چون میدونستن که دیگه قولی نیست که به اونا آزاری برسونه.